بسم الله الرحمن الرحیم الايجاز والاطناب والمساوات شمیین زمانی که میخوای یک پیامی رو به مخاطب برسونی میتونی با کلمات کم معانی زیادی رو بیان کنی میتونی اون معانی رو که میخوای بیان کنی همسنت با الفاظت باشه و نه الفاظت بیشتر از اون معانی هست که شما میخوای بیان کنی آ؟ حالا ما اینا رو انشااءله امروز با هم می یک درس اولش مثاته مساوات یه قعد کوچکی داره مساوات به معنی چی هست؟ القاعده قاعده هفتاد و پنجم کتاب بیا شصت و پنجم کتاب نه این اشتباه نوشته شصت و پنجم اشتباه چاپیه. این کل کتاب هفتاد هفت قایده بیشتر نیست خوب المصاوات و معانی المعانی بقدر الالفاظی مصاوات اینه که معانی به اندازه الفاظ باشه اگر من شما رو گفتم چایی درست کن تا بخوریم اون معانی که میخوام بیان کنم به اندازه الفاظ بود این تیه؟ مصاوات اگر من گفتم طلاب درس‌هایتون را بخونید آقای معاذ درست را بخون اینجا من اتمام ولی اگر گفتم الفاظ به اندازه معانی بود مساوات برابری یعنی برابری بین معانی و الفاظ المصوات أن تكون المعاني بقدر الألفاظ، مصواتين المعاني بقدر الألفاظ باش، والألفاظ بقدر المعاني، والألفاظهم بقدر معاني، لا يزيد بعضها على بعض، بعض يزونا بر بعض يجي إضافنا باش. نالفاظ نا بر معاني ونمعاني بر ألفاظ. حلبيا، <تصفيق> قال تعالى وما تقدموا لانفسكم من خير تجدوه عند الله. ها؟ و هر آنچه را از پیش برای خود بفرستید از خیر آن را در نزد پروردگار خواهید یافت. خب. معانی به اندازه دزی و قال تعالى ولا يحيق المكر السيء إلا بأهله و ماكر بعد جز بأهلش معنی به قدره وقال النابغة ﷺ فإنك كالليل الذي هو مدرك وانخلت أن المنتهى عنك واسع فامانه فإنك كالليل فإنك كالليل كليل فانك كليل ايه الكوفه دول ها كف نادر خب بدون كاف مش خون انو البت خون فانك كليل الذي هو مدركي وانخلت أن المنتهى عنك واسع ميجي تو همان به مانند شب هستی که مرا درک خواهی کرد آه شب چیز فراگیریه همه چیزو فرا میگیره یعنی من راه فراری از دست تو اینجا میگن نابغت و ذوبیانی نومان ابن منزر رو مرد خطاب قرار داده و تشبیح کرده نومان ابن منزر رو در حالت خشمش به شب که هر جایی رو شب میگیره یعنی نومان که هم اگه خشبگین بشه جای فراری از دستش نیست نمیشه جای رفت چطوری شبه همه جا رو فرار میگیره نومان هم اگه خشمگین باشه هر کجا باشی تو رو چیکار میکنه؟ پیدات میکنه و انخل تو اندال منطاع انکواسو اگرچه که من گمان بکنم که جای دور از تو وسیح هست یعنی اگر چه من گمان کنم که جای فراری هست ولی جای فراری وجود نداره منطقه همون جای دور میگند خوب وقال ترفت ابن العبدی ترفت ابن عبد گفته ستبدی لکل ایام ما کنت جاهلا آشکار خواهند کرد روزها آنچرا که تو آنها رو نمیدانی بسیاری از مسائلی رو روزگار آشکار میکنه خیلی از ناگفتهای روزگار آشکار میکنه؟ خیلی از حقیقت ها رو و یاتیک بالاخبار ملم تزودی و خبرها رو میآورد برای تو کسی که اونو زاد ندادی کسی که اونو توشه ندادی یعنی توشه سفر بش ندادی که خاص برین کار برات انجام بده خبرارو بیاره میگه و یاتیک بالاخبار ملم تزودی و خبرها رو برای تو کسی میاره که تو اون شخصو برای این کار نفرستادی طلب نکرده‌ای. اینجا در این امثله ما می‌بینیم که الفاظ به اندازه چه هستند؟ معانی هستند. اما در قسمت ایجاز می‌بینیم که معانی بیشتر از الفاظ هستند. در قسمت چی؟ دو الایجازو قال تعالی الا له الخلق والامر. الا الخلق وال أمر أول قاعدة قاعدة قاعدة الشاششم الإجاز جمع المعاني المتكاثرة تحت اللفظ القليل مع الإبانة والإفساح إجاز جم کردن معاني زياد زير لفظ الفاظ كام همراه البطبا فسيه بودن و أشكار بودن وهو نوعان وإن إجاز خودش باره دو نوعی یک ایجاز و قصر یک ایجاز قصر و یکولو به تضمین العبارات القصیرتی معانی قصیرتی من غیر حصف ایجاز قصر اینه که عبارات کوتاه معانی کوتاهی رو دربار داره بدون حصف بدون چیه؟ بدون این که کلمه از جمله حصف شده باشه اما اجازه حذف و, و یکون حذف با حذف او یا جمله یا اکثر مع قرینه تعین المحو اما ايجاز حذف اینه که با حذف کلمه یا با حذف جمله یا با حذف بیشتر انجام می‌گیره. البته همراه با قرینه ای که اون قرینه اون حذف شده رو چكار بكنه مشخص می‌کنه. حالا بیای روی امساله. قال تعالى: "أَلَا لَهُ الْخَلْقُ وَالْأَمْرُ". اینجا خداوند سبحان با دو کلمه خیلی از معانی رو داره به علم میکنه "أَلَا لَهُ الْخَلْقُ وَالْ" آه، "لَهُ الْخَلْقَ" کی میگیم؟ تمام خیلقات. "لَهُ الْأَمْرَ" آمر رئیس. یعنی آمر تمام امور. خب می‌بینیم که این دو کلمه شامل بسیاری از اشیا و بسیاری از شؤونات میشه پس در این دو کلمه معانی بسیاری هست بدون هست و قال صلی الله علیه و سلم الضعیف امیر الرکب وقال صلی الله علیه و سلم الضیف و امیر الرکب زیف امیر کاروانه امیر گروهه خب با این الفاظ کم تمام آداب سفر و مهربانی برزعیف وجود داره یعنی میخواد بگه که در واقع بله این, این حدیثو الهاز سندی اونایی که بررسی کردن میگه همچنین حدیثی وجود نداره. متفهم شدم چطور داری سوگیری بلاغی ارادی نداره اللهازه بلاغی میشه توضیحش داد در واقع اللهازه ندید جدای اللهازه. اصلا فرض کنیم این گفته گفته شما باشه ولی مفاهیم زیادی توش هست. این مفاهیم رو بیان میکنه که حالا داره. برنانتان برنانتان برنانتان بیروبرین از داره خوبه فعل ما داره بیان میکنه که داره روحیه می به ضعیف ها آداب سفرو میگه که ضعیفو به مانند یک امیری باش کار کنید برخورد کنید ولی با چه کلمه از ضعیف و امیر الرقم. با دو کلمه وقيل اللي يسوق مالا كثيرا بيك اك عرابيه كمال زيادی رو هل تنسل شخص تبور بكشنوياً بيوري؟ در كي مثلا خوالي على تعالى الله الخلق والآمل شخص ايكي بلوغي جاد نهفته توي جا نكي توين هم نهفته؟ بس باروه كي ايجاز نه؟ خوف خوف زعيف اميري راقبات شطور مثلا؟ اصلا بقوله اكنا چطوري؟ بابا منظور چیه منظور اینه که واضحه سستاد اخیی واضحه خیلی بریم بریم اگر حدیثی رسوله نباشه که مشخص بکیم چیم دن بیم وقیل اللی عرابی یا سوق مالا کثیرا و با یک که مال زیادی رو داشت سوق میداد گفته شد لمن هاو المال این مال از آن چه کسی است؟ فقال لله في يدي لله في يدي خب این هم لله في یدی معانی زیادی داره پس اینجا در این سه مثال می بینیم که اجازه اجازه چه هست؟ قصر هست. بله چون اینجا کلمه یا جمله ای هست نشده اما از اینجا کار به بعد دقت داشته باش. قال تعالی و جاء ربکا والملک صفا صفا ها میگه تقدیر کلام چون اینه که و جاء امر ربکا و جاء امر پروردگارت بس اینجا ایجاز هست ولی ایجاز چه هست حالا ما اللحاظه چی دیگه بحث نمی کنیم فقط اللحاظه علم خودمونین و جاء ربکا والملک و صفا میگه اینجا كلامي امر مقدر است انجا يلطفي بكون اره وقال تعالى خب يعين مسال ديگيرو بزنين بيهتره وقال تعالى قاف والقرآن والقرآن المجيد قاف سوغان بقرآن المجيد بل عجب أن جاءهم منظر منهم بلکه تعجب کردن از این که نزدشان انظار ای آمد خب در این مثال می‌بینیم که ما ابتدای آیه با سوگند شروع میشه و جواب سوگند هم ذکر نشوده قاف والقرآن المجید لتبعثن سوگند به قرآن مجید حتما شما چی میشید؟ برانگیخته میشید که بینیم اینجا اجازه حذف بلی از نوچیش حذفش و قال تعالی فی حکایة موسی علیه السلام مع ابنتي شعیب الله متعال در حکایت موسی با دو دختر شعیب میگه فسقا لهما برای ان دو تا آب داد گوسفندانشان را ثم تولى الى الظل سپس به رفت فقال رب اني لما انزلت اليا من خير فقير پس گفت پروردگار همانم من به آنچه که نازل کنی برای من از خیر نیازمندم خب تا اینجا ای کار بیان شده ولی اینجا میبینیم حذف رخ داده در بعد از این آیه فجاعت فجاءت احدا تمشي على اومد یکی از آن دو با شرم و حیا راه میرفت قالت ان ابی یدعو که اجر که ما سقیت لنا گفت که به موسا گفت که یکی از اون دو دختر باشر با شرم و, با شرم و راه می رفت اومد نزد موسا و به موسا گفت همان پدرم خواسته تو را تا اون آبی رو که برای ما داده ای اجرت رو بدهد خب جای کار میگه کلماتی هست شده مانند چی؟ انجا دقت کن فساقا لهما ثم تولى إلى الظل فقال ربي إني لما انزلت الي من خير فقير کجا رخ داده اینجا رخ داده که اینجا فذهبتا الى ابيهما وقصت عليه ما كان من امر موسى فأرسل إليه. اون تا دختر رفتن نزد پدرشون قصه گفتن پدر اون دو دختر دختره رو فرستاد ادامه آیه میشه فجاعت و احداه ما بعد از این که اون فرستاد اون دختره هم اومد نزده موسا اونا همه چه شدند؟ میبینیم که حصفند این ایجاز دیگه ایجاز حصفه میبینیم تو این آیه کریمه خیلی از کلمات وجود نداره اینو میگن ایجاز پس ایجاز خودش بر بردونه شد اجازه قصر و اجازه حذف. و در اجازه حسب ضرورت است که باید قرینه باشه خب اما اطناب چی هست الاطناب قال تعالى نه قبل امس لي بيوم روی قاعده بعدش بریم روی امثله القائده الاطنابو زیاده تو لفظی الالمعنه اطناب چه هست؟ اضافه کردن لفظ بر معنا، اضافه کردن لفظ بر چی؟ بر معنه هون یکیا ولی میبینی که لفظ چیه؟ بسیاره پس اطناب زیاده بر عکس ایجاز اونجا لفظ کم بود معنه اینجا کم و لفظ زیاد اتناب زیادت لفظ بر معنی لفائدتین بخاطر فائده ای الکی نه و یکونو در پاورقی هم نقطه قشنگی گفته میگه اگر این زیادت بخاطر فائده باشه اون موقع بهش میگن اتناب اگر فائده درش نباشه بشه میگن تطویل به با عربی باره و حشف هم بشه میگن البته اگر مشخص نباشه خلاصه تطویل و حشف با تواجبه اختلافاتی که درشون هست پس اتنار زیادت لفظ هست بر معنا، به خاطر ای و بعمور به امور منها میگه این اتناب میگه این فوائد با چند عمر رخ میده اتناب با امور متعددی رخ میده از جمله یک ذکر الخاص بعد العامی ذکر کردن خاص بعد از چه؟ طلاب ما از مشقتون رو بنویسید. آی این مگر معاذ از طلاب نبود؟ ولی به خاطر یه فایده‌ای ما اومدیم اینو چکار کردیم؟ جداگونه یعنی بعد از عام خاصی کردیم؟ بله. پس ذکر خاص بعد از عام لتنبيه علی فضل خاص تا این که مشخص بکنه که آقا این خاصه اینجا چه داره؟ فاضل داره مثالش خیلی واضحه تو امثله ذکر العام بعد الخاص برعکس اول خاص رو ذکر میکنه بعدش چی رو عام لافادته العموم مع عنایت بشأن الخاص تا به معنای عام باشه تا عموم برسونه همراه با اینکه اون خاص شان و جایگاه ویژه‌ای داره ها ایضاحو بعد الابهام امر دیگه این اتناب چیه؟ واضح کردن بعد از چیه؟ مبهم بودنه لتقریر المعنى فی ذهن سامع تا اون رو در ذهن شنونده چکار کنه؟ تثبیت بکنه دال ات تکرار امر بعدی که اتناب بوسیلش انجام میگرید تکرار لدائن البته بخاطر سببی که تمکین المعنى من النفسی و که و که طول الفصلی این انگیزهای تکرار ماننده تمکین معنى تحصور حسرت خوردن و طول فصل جا داده معنی؟ بالی تمکین جای دادن قدرت دادن و که تحصوری؟ به معنی حسرت خوردنه به معنا چیه؟ حسرت اه. حسرت میخوره برای حسرت خورده نه به خاطر طولانی بودن فاصله این فاصله اومده طولانی بوده شما به خاطر که این, این فاصله طولانی بوده دوباره میای تکرارش میکنی سخناتو. بس بيا إن جا كدمو هارونا خون دي بحناوس. عليه اعتراض. يكيد جاز أمورك سبب اعتراض مشة ييه اعتراضه. وهو أن يقطع في أثناء الكلام أو بين كلامين متصلين في المعنى بجملة أو أكثر لا محل لها من الأعرا. اعتراض جاس هم الجمل موترزيه جاس كميجانت. اعتراض ميجيناس كشمات در أثناء الكلام أو بين دو كلام متصل. که الله هزین معنایی بهم یه جمله بیاری یا بیشتر از یک جمله بیاری محلی از اعراب ندارد. التذیل. امر دیگه انتخاب چه است؟ تذیل هست. تذیل دیگه چیه؟ دار توضیح میده. و هو تعقیب الجمله به جمله دیگر بعد از این جمله جمله دیگه ای بیاری که تشتملو علا معناها توقید الله که این جمله دیگر معنای جمله اولی رو دربر داره به خاطر تأکید میاری اینو اینو میگن تذیل پس تذیل این است که شما یه جمله بعد از یک جمله جمله دیگه بیاری که این جمله دومی اون معنای جمله قبلی رو دربر داره به خاطر چیش میاری؟ تأکید و بر دو قسم این تذیل تذیل بر چند قسمه؟ تو همثلی برای این هر دو تا برای مثال آورده یک جاره مجره المثلی این استقل معناه و استقنا اما قبله اون تفیلی که جاری مجرای مثل هست چه زمان جاری مجرای مثل زمانی که معناه دومی از قبلش چه باشه؟ مستقل باشه بی نیاز باشه از جمله ما قبلش دو تزیل که غیر جار جار جارن، اون اولی جارن مجرى المسالی، غیر جارن مجرى المسالی. چه المثل مسالی؟ بله. پس اونی که جاری مجرى مثل بود، یعنی مثل مساله، مثل چیه؟ مثلش؟ آه، جاریه، مثل خودشه. همون راهی رو که اون رفته این هم غیر جاری مجر المثلی دو اون تضییلی که جاری مجره مثل نیست اللم یستغنی اما قبله چه زمانی جاری مجره مثل نیست؟ زمانی که از ما قبلش از جمله قبلش بی نیاز نباشه برای فهم معناش نیاز به چی داشته باشه؟ ما قبلش و آخرین امر اتنباش انجام مغره سبب اتنباش احتراص احتراس و يكون حينما يأتي المتكلم بمعنى يمكن أن يدخل عليه فيه لوم فيفتن لذلك و بما يخلصه منه احتراس مي باشد اين احتراس زمانك متكلم یک معنای رو بیان میکنه که احتمال داره به خاطر بیان اون معنا سرش چی بیاد؟ سرزنی شی بیاد در نتیجه متوجه میشه بعد از این یک کلمه رو ذکر میکنه که یک کلمه رو ذکر میکنه که اون مزمت و اون فکر نادرست از ذهن برداشته بشه اون کلمه یک کلمه رو یاد ذکر میکنه که اون مزمت و اون فکر نادرست بشه برداشته بشه الاحتراس و یکونو حینما یعت المقتکلم و بمعنه یمکنو ان یدخله علیه فیه لوم یقید داشته باش میگه احتراس این است که متکلم چیز رو میگوید ممکن است که سرزنش برو وارد شود فیحتنو لدالک متوجه میشه که او اگر من این سخن رو به این شکل بگم چه وارد میشه؟ لوم, لوم. و یعطی به ما یخلیس همین در نتیجه کلمه رو میاره بلنزم. که اونو از این مزمت چکار بکنه؟ خلاص. خلاصش بکنه حالا این خیلی قشن تو امثله اینو آورده قال تعالا بیا روی امثله میگه که تنزل الملائکتو والروحو فيها نازل می شود این در از تنزلو این فعل مزارعه تنزل الملائکتو والروحو فيها نازل می شود فرشته ها و جیبریل همراه راه مگه جیبریل آیا یکی اسم ملائکه نیست اگر فقط می گفت تنزل الملائکه جیبریل چی بود ولی بعد از آم اومد دوباره به شکل خاص روح رو چکار کرد جبرائيل جزاء بشكل خاص زك كارت. بارع أحسن. خوب مثال دوفوميرو دة قديش تباش؟ وقال تعالى رب اغفر لي ولوالديا ولمن دخل بيتي مؤمنا وللمؤمنين والمؤمنات خب اینجا لفظ لی ولی والدیه اضافه هست چرا؟ چون اگر می بود رب غفر لی رب غفر للمؤمنین و المؤمنات شامل بی شد یا شد؟ بله پس اینجا اول خاص ذکر کرده بعدش چی رو؟ آمو رب غفر لی ولی و لی بعد از اون اومده بشکل گفته که برای مؤمنینو مؤمنات. وقال وقضينا إليه ذلك الأمر أن دابرها أولئك مقطوع مصبحين وقذّوا تكرين بسمته أن أمرا كدام أمرا إن جموا بهم ها أمر شيء أمر إني أن دابرها أولئك مقطوع مصبح أمر إني كأغصوب إنا كأرشون تمامه بله. اول به شکل ابهام گفت که ما اون امر رو براش چیکار کردیم؟ قضاوت کردیم کل امر مبهمه بعدا دوباره اومد توضیحش داد واضحش کرد که اون امری که ما قضاوتش کردیم چی بوده؟ همینی بوده که صبح اینا چی میشند؟ باله. پس پس ذکر آم بعد از خاص برایش مثال آورد ذ ذکر آم ذکر خاص ذکر اول ذکر عام بعد از خاص ذکر خاص بعد از عام براش مثال آورد ذکر عام بعد از خاص براش مثال آورد ایزاح بعد از ابهام هم مثالش همین بود اما بریم جلوتر وقال عن ترتبه لو شدات في بعض الروايات معلقته یدعون ان ترى والرماح كانها و بئر فی لبان فرا فرامیخانند انتر انترا در حالی که نیزه ها به ماننده تنابهای هستند که در سینه اسبند که در سینه چه هست اسب دوباره میگه يدعون ان اشتانو بیارن؟ اشتانو بیار به معنی تناب تناب هستن که در سینه آس بله. یدعون ن ان ترا و صیوفک لمع البوارقی فی سحاب المظلومی. فرامی خانن ان ترا در حالی که شمشیرها گویی که درخشندگی درخشندگی بارگ هستند در های تاریک گویی که شمشیرها بانند آه اون چیایی هستند. نور برقی که در نور بله. رد و برقی که در چه هستند نور برقی که در عبرهاست اینجا میبینیم که دوبار تکرار کرده چی رو یاد اونه انتر پس اینجا سبب اتناب چه با چی چیزی رو داده؟ با تکرار که گفت یکی از اون اموری که اتناب باش انجام میگیر چه هست تکرار باره بله. شد. شده شده نه بله فایده شده میخواد معنا رو در ذهن تقریر بکنه بله آه. یا میخواد ببین تو این مثال برای گفته بود که تکرار خودش انگیزه هایی داره سبب ها و عواملی داره یا یا تقریر معنا در نفس بود یا به خاطر تحسر بود یا به خاطر توله فصل بود نماز فقط اون چی شه تصنیف بله بله برای اونا دیگه اینجا مثال نهارده توی خود امثله مثال نهارده ولی توی چی آورده داخل بحث مثال برای تحسر آورده و برای طول فصل هم آورده خب وقال الجعدی، نابغه تول نابغه جعدی گفته الا زعمت بنو سعد بانی الا كذب کبیرو سن فاني دیقت کن تو این مثال میگه آگاه باش بنو سعد گمان کردند که من پیرمرد مرد هستم از بین روانده هستم فانی هستم بعدن ولی در وسط اینو آورده گفته الا اینو بگش میگن جمله معتریزیه پس این هم زائد هست این هم اعتناب درش هست با چی؟ با اعتراض با چی؟ اعتراض اینجا دقت کن زعمت آمد سعد به انی در از تونینا کبیر و سننی. آگاه باش آگاه سعد گمان کردن که من چیم؟ پیره مردم زیاد سنم ولی در وسط چی آورده بود؟ علاکه بود دروغ میگند آگاه باش بنیصد گمان کرده که من دروغ میگند که من پیرمردم. مردم این علاکه بودی که در این وسط اومده بش میگن جمله اعتراضی. اعتراضیه بله پس برای اعتراض هم مثالشو آورد چون یکی از اسباب یکی از کارهایی که باشی اعتناب میشد چی بود؟ اعتراض بود اما دیگری تزیل هست وقال الخطای تو خطایه گفته ببین تزیل هم بردونا بود اونی که جاری مجرای مثل بود و اونی که غیره جاری مجرای مثل بود یا الله. حالا این مثالش برای جاری مجرای مثاله تزورو فتن على الحمد مالهو تزیل و دیگه توضیح داد تزیل یعنی آوردن جمله بعد از ای که این جمله دوم شامل معنای جمله اول بود به این میگفتن چه؟ تذیر حالا تو این مثال دقت کن تزور و فتن یعطی الحمدی ماله ملاقات میکنی جوانی را که یا انسانی را که میدهد به خاطر ستایش به خاطر این که مدهبش مالش رو و من یوتل اسمان و من یوت اسمان المحامید یحمدو و هرکس پول ستایش ها رو بده حمد کرده میشه دارمون معنای قبلی رو چکار میکنه بیان میکنه اونجا گفت تو جوانی رو میبینی که پولش رو به خاطر چی میده مالش رو به خاطر چی میده خاطر که حمد بشه در دوم میگه خب هر کسی که پول ستایش ها رو بده تعریف میشه پس این شد تذیل یعنی یه جمله آورد که معنای جمله اول در این وجود داره ولی از اون جایی که این جمله دوم نیازی نداره برای معنای خودش به جمله قبلی به این میگن جاری مجرای مسل ببین میگن جاری مجرای چه یعنی آقا اینجوری میگه و من یعتی اسماء المحامدی یحمدو بدون جمله اول این آره دیگه این اصلا جاری مجرای مساله و من یعتی اسماء المحامدی محمدو متوجه شدی؟ خوب وقال ابن نباته السعدي. ابن نباته سعدی میگه لم یبقی جود کلی شیئن اعملوه لم یبقی جود کلی شیئن اعملوه مالا شما اشتباه نوشته لم یبقی جود کلی شیئن باقی نگذاشت سخاوت تو برای من چیزی که آرزوش رو بکنم یعنی تو این قصه سخاوت داشتی این قصد چیز منو دادی که دیگه من الان آرزوی چیزی رو ندارم. لم یبقی جودو کشه لیشه ان او امیلو. باقی نگذاشت برای من سخاوت تو چیزی را که آرزویش را بکنم. خب جمله بعدی ها همین معنا رو دربر داره ولی نیازمند این جمله هست. این دیگه غیر جاری مجرای مسئله. میگه ترکت نید. اصحاب دنیا بلا عملین خود ترکتنی به چه برمیگرده؟ به ما قبل به چی؟ میگه باقی نگذاشت باقی سخاوت تو برای من چیزی که آرزویش بك... را بکنم این سخاوت تو مرا جوری رها کرد که همراهی میکنم دنیا را بدون آرزو همراهی میکنم دنیا را بدون آرزو این میگیم تذیله چرا تذیله؟ میگیم به خاطر اینکه در جمله دوم که ترکتنی, ترکتنی اصحاب دنیا بلا عملن معنای همون جمله چی رو داره؟ قبلی رو داره در جمله قبلی گفت که سخاوت تو برای من چیزی باقی نگذاشت که آرزو رو بکنم همین جمله هم داره همون معنا رو بیان میکنه ولی این غیر جاری مجره مسئله چرا؟ چون این به قبلش چی داره؟ نیاز داره ترکتنی. ها چی چیزی ترکت نیه؟ به کجا برمیگرده؟ جوزوکه پس این جاری مجره مثال نیست شما اگر بیایی اینو به عنوان مثل بگید ترکت می اصحاب دنیا بلا عمله مردم چی میفهمد اینو؟ ولی اون و من ومن یعطی اثمان المحامدی هر هرکس هزینه ستایش رو بده ستایش کرده میشه همی جار مجره مثل اصد اکمی یعنی مثل مسله ضرب المسله نشینی تو زندگی خب اون مثل مسله ولی این دیگه این جاری مجره مسل نیست این چون, ب... چون این نیاز یا یا داره یک جلوه یکی ضرب یعنی المسله اینه که نیاز بر اول داشته باشه غیری جارمجره غیر نداشته باشه بله بله جار جارمجره اونیه که نیاز نداره خودش آورده بود دیگه تزیل جار جارمجره المسل این استقل معناه بادر اون مستقله مستقله. اینی که میگه و من یعت اسماء المحامد یحمدو ها اون جاری مجرا است تو معناش مستقله ولی این ترکتنی اصحاب الدنيا بلا املین معناش مستقل نیستا مستقل نیست نه دیگه جاری مجره است مثل نیست دیگه این وقال ابن المعتز یصف و فرسن. ابن المعتز در حالی که اسبی رو وصف میکنه چی میگه سببنا علیها سیاتنا حسابی این که آبو نا بریزی به یک پارگی این داره میگه میگه ما چطوری آب میریزا با چوبه هایمون با تازیه هایمون این اسب بدبخت رو اینجوری میزدیم میگه سببنا عليها سیاتنا خوب میزدیمش، زدیمش اسبو سواری منو ولی در وسط یک کلمه اومد که من اونو نخوندم سبب علیها ظالمین سیاتنا اگر این ظالمینو نعاورده بود مردم فکر می پس اسب این خیلی اسب تنبلی بوده راه نمی که این همه خوچوب خورده ولی بعد از این کلمه ظالمینو آورد دیگه ما می دونیم که نه این اسب بدبخر می از روی ظلم اینو چکار کردند زدن به این می ببین میگن چی احتراس یعنی ظالمین با چی دور به اسب و به کاری به رب نداره بحث روی اینه که احتراس اینه که اگر اگر این کلمه ظالمین و شاعر اینجا بیان نمیکرد، ما چه فکر میکردیم؟ ما فکر می‌کردیم این سواری که این آقا داشته اصلا راه نمی‌رفت که اینا به چوب خورده ولی با کلمه ظالمینه این لوم و از اسمش داره چیکار کار میکنه؟ برطرف میکنه آقا اون رفته ما اروچی بهش زدیم؟ ظلم آه سبب نا علیها ظالمین سیاطنا حسابیش میزدیم با سیاطمون در حالی که ما ظلم میکردیم فطارت بیها ایدن سراعون و ارجلون میگه اون داشت میپرید اون در صفاش داشتی چینی شود پرواس می‌کرد بله سیراهی لحظه و... سببنا عليها ظالمینا سیاطنا فطارت بها ایدن سراع و ارجلون بله می زدیم او را با شلاقه هایمان پس پرید دست و پایش سراع یعنی شتابان رفتن سرعان بله اونم خیلی سری می رفت اونم خیلی سری می رفت تا اینجای کار یعنی قاعده 67 کتاب به فضل پروردگار عالم ما تمام قواعد معانی بود یا بیان معانی رو خوندیم بله معانی بود چون بیان رو قبلا خوندیم انشالله ده قاعده دیگه فقط برای چی برای بدی.